عزیزان، به نظر شما کلیساها باید بر چه چیزی تاکید کنند تمرکز بر اعضا یا پیدا کردن گمشدگان؟ در برنامه امروز معلم ما کلیسای برون نگر رو به ما معرفی میکنه کلیسای مورد علاقه پولوس، یعنی کلیسای فیلیپی. به کلاس دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما اطمینان داریم چیزی که شما تعلیم میگیرید شما رو به چالش میکشه و باعث میشه کلیسای شما بر نجات گمشدگان تمرکز کنه. حالا معلم ما امروز در مورد نامه پولوس به فیلیپیان با ما صحبت میکنه. در این کلاس بررسی خودمون رو از نامه پولوس رسول به فیلیپیان شروع میکنیم. پولوس نامه فیلیپیان رو اینطور شروع میکنه. هر وقت شما را به یاد می آورم خدا را ش و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می کنم و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد خدا را سپاس می گویم من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی شروع کرد تا روز عیسی مسیح آن را به کمال خواهد رسانید من حق دارم که درباره شما چنین احساسی داشته باشم زیرا همیشه شما در دل من هستید و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم شما را شریکان خود در فیض خدا میدانم ای برادران میخواهم بدانید که آنچه به سر من آمده است در واقع به پیشرفت انجیل کمک کرده است زیرا انتظار شدید و امید من این است که هرگز موجبات رسوایی خود را فراهم نسازم بلکه حالا با دلیری کامل مانند همیشه مسیح را در وجود خود جلال دهم خواه با مرگ من باشد خواه با زندگی من زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام می شود. اما اگر با زنده ماندن بتوانم کار ارزندهای انجام دهم، من نمیدانم کدام را انتخاب کنم. بین دراهی گیر کردم. اشتیاق دارم که این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم که خیلی بهتر است. اما به خاطر شما زنده ماندن من واجبتر است. با چنین اعتمادی یقین دارم که زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با شما خواهم بود تا به وسیله آمدن مجدد من موجبات افتخار شما به من در مسیح عیسی بیشتر گردد به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا هستید و با با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش میکنید شرح تأسیس کلیسای فلیپی که در باب 16 کتاب اعمال رسولان خوندیم حتما یادتونه کلیسای فلیپی حاصل رویای آسمانی پولس بود که مردی از مقدونیه گفت به اینجا بیا و ما را کمک کن پولس برای تأسیس کلیسا به آسیا رفته بود اما این رویا مسیر او را عوض کرد و به مقدونیه رفت انتشار انجیل و تمدن از اروپا به طرف غرب و به این بخش از جهان تحت تأثیر این رویای آسمانی قرار داشت. تأسیس کلیسای فیلیپی نتیجه هدایت الهی و نتیجه عطیه عظیم روح القدس بود که معجزه بزرگی را در شهر فیلیپی به عمل آورد. بعد از اینکه پولس و همراهش سیلاس دستگیر و زندانی شدند، زلزله خارق‌العاده رخ داد که تمام درهای زندان باز شد و تمام زنجیرهای زندانیان شکسته شد. اون زلزله ای غیرعادی بود. زلزله‌ای موجزاسا در ابتدای تأسیس کلیسای فیلیپی به وقوع پیوست. بعد از اینکه پولس فیلیپی رو ترک کرد، کلیسای فیلیپیان تبدیل به کلیسای مورد علاقه شد. بدون تردید پولس از کلیسای فیلیپی جانبداری کرد محبت عمیقی بین پولس رسول و این کلیسا بود. در ابتدای این کلاس بخش ابتدایی نامه پولس به کلیسای فیلیپیان رو خوندیم. او محبتش رو اینطور بیان می‌کنه: هر وقت که شما را به یاد می‌آورم، خدا را شکر می‌کنم و در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذکر می‌کنم و به خاطر همکاری شما در انتشار انجیل که از اولین روز شنیدن آن تا به حال ادامه دارد، خدا را سپاس می‌گویم. کلمه‌ای که رابطه بین پولس و کلیسای فلیپی را نشون میده، کلمه رفاقت کلمه‌ای که در زبان یونانی برای رفاقت استفاده شده کوینونیا هست. پولس به کلیسای فیلیپی به عنوان رفاقت در انجیل اشاره میکنه. این تصویر زیباییه که نشون میده کلیسا باید اینطور باشه. بر اساس کتاب مقدس کلیسا سازمانیه که برای افراد غیر عضو هم مفیده. من فکر نمی کنم که خیلی از کلیساها به این موضوع اهمیت بدند اما در واقع کلیسا سازمانیه که وجودش برای افراد غیر عضو هم سودمنده چون هدف کلیسا اجرای این ماموریت بزرگی که خبر خوش انجیل رو به گوش تمام مردم دنیا برسونه. من معزه خیلی عمیق دکتر جی آر دبلیو استات رو در کلیسای اصخفی شنیدم که عنوانش این بود. کلیسای برون نگر. وظیفه مسلم کلیسا اینه که به اعضای کلیسا خدمت کنه. ما میتونیم به چنین کلیسایی کلیسای درون نگر بگیم وظایف خاصی در کلیسا هستند که شامل برقراری ارتباط و خدمت به اعضا هست برای اجرای این وظایف و اهداف کلیسا باید درون نگر باشه برای مثال تمام عطایای روحانی مستقیما به تمام اعضا داده میشه اگه خدا به شما اطیه روحانی داده هدف از داده شدن این عطیه روحانی اینه که در دایره اعضا دیگران رو خدمت کنه پس چیزهای زیادی در طبیعت وظیفه و اهداف کلیسا وجود دارند که فقط زمانی انجام میشن که تمام صندلی‌ها رو به درون قرار می اما دکتر استاد به ما میگه بعد از اینکه ما این کار رو انجام دادیم و تمام این وظایف اجرا شدن باید یادمون باشه که سندلی ها رو به طرف بیرون بچرخونیم و به دنیای گم شده بریم. چون این هدف نهایی هست که کلیسا به عهده داره. معجزه او کلیسای بروننگر تماما در مورد اون دو بود کلیسا بود کلیسا درون نگر هست اما پرداختن به درون به این دلیل هست که اعضا تجهیز شوند و به خارج از کلیسا بپردازند که این همون کلیسای برون نگر هست در بررسی ما از کتاب‌های عهد جدید وقتی که وارد کتاب اعمال رسولان شدیم و نامه پولس به قرنتیان من با شما در مورد اثر انگشت مرئی کلیساهای نامرئی صحبت کردم گفتیم که اثر انگشت شست نامرئی کلیسای جهانی با عملکرد کرد کلیسای محلی در میان گروه های مردم با بشارت مرئی میشه. گفتیم که انگشت شست کلیسای نامرئی معرف بشارت و نجات در کلیسای محلیه. انگشت اشاره تعلیمه، انگشت وسط رفاقت یا کوینونیاز، بعد انگشت حلقه، انگشتیه که محبت ما به مسیح و کلیسا رو نشون میده که با پرستش ابراز میشه. انگشت کوچک هم بیانگر دعاست. در دست دیگه من گفتم که انگشت شست نشون دهنده اتحاد چون فرض رو بر این میذاریم که در بین اعضای کلیسا یگانگی وجود داره انگشت اشاره دست دیگر نشانگر گوناگونیه انگشت وسط نشان دهنده چون کلیسا مثل یک تیم تراهی تر شده تمام سمراتی که خدمت کلیسا داره به تمام اعضای کلیسا تعلق داره انگشت حلقه نشانگر یک دلی یا محبتیه یک که اعضای کلیسا نسبت به هم دیگه دارند. انگشت کوچک هم نماد برابری یا این واقعیته که در نظر خدا همه اعضای کلیسا یک ارزش دارند و برابرند. همونطور که اثر انگشت مرعی کلیساهای نامرئی رو ملاحظه کردید، کلیسای فیلیپی رو هم با استفاده از این اثر انگشتان بسنجید. با استفاده از این اثر انگشتان به عنوان یک معیار توجه کنید که کلیسای فیلیپی کلیسای ایدال پولس رسوله کلیسای فیلیپی کلیسای نمونه‌ی مورد نظر پولس رسول هست چون کلیسای فیلیپی یک کلیسای مبلغ بود کلیسای فیلیپی میتونه نمونه‌ی یک کلیسای بروننگر باشه کلیسای فیلیپی خدمت تأثیر گذاری داشته اما این کلیسا بیشتر از هر کلیسای دیگه‌ای که پولس تأسیس کرده یادآور اینه که هدف کلیسای درون نگر اینه که اعضا تجهیز بشن تا به دنیای بیرون خدمت کنند و کلیسایی نگر باشند اگر دقت کنید میتونید در باب اول فیلیپیان ببینید که پولس چند بار به انجیل عیسی مسیح اشاره میکنه. نامه پولس به فیلیپیان با بقیه نامه‌هایی که تا حالا بررسی کردیم فرق داره. ما شاهکار الهیاتی پولس رساله رومیان رو بررسی کردیم، شاهکار شبانی او نامه اول قرنتیان رو بررسی کردیم، همچنین شاهکار پولس در مورد خدمت دوم قرنتیان رو هم بررسی کردیم و شاهکار تعلیمی او در موضوع کلیسا افسوسیان رو هم بررسی کردیم اما وقتی به کتاب فیلیپیان می رسیم نامه ای رو بررسی می کنیم که واقعا نامه تعلیماتی نیست. نامه پولس به کلیسای فیلیپیان یک نامه محبته. نامه پولس به فیلیپیان یک یادداشت تشکر زیبا و الهام گرفته است. کلیسای فیلیپیان پولس را حمایت می کرد. پولوس به فیلیپیان میگه گه وقتی که او به عنوان یک خادم به کسانی خدمت می کرد که به قول پولس نمیتونستند از نظر مالی او را حمایت کنند یک بار دیگه اونها نیازهای او را تامین کردند پولس نمیخواد از قرنتیان یا افسوسیان یا تسالونیکیان یک دینار هم بگیره چون او معتقد بود که اونها به لحاظ روحانی اونقدر به بلوغ نرسیدند که با روح درست و انگیزه درستی بدن پولس وقتی در اونجا بود به جای اینکه از اونها کمک بگیره چادردوزی میکرد او باید به جای چادردوزی خدمت می کرد. کلیسایی که این امر را برای پولس امکان پذیر می کرد تا کار چادردوزیش را کنار بذاره و به صورت تمام وقت به کار خدمت مشغول بشه همین کلیسای فیلیپیان بود. کلیسای فیلیپی وقتی که پولوس به کلیساهایی که نام بردیم خدمت می کرد از او حمایت می کرد. رساله فیلیپیان یکی از نامه هایی که پولوس از زندان نوشته. افسوسیان، فیلیپیان نوشته. نوش و فلیمون رسالات زندان نامیده می چون اینها زمانی نوشته شدن که پولوس در روم زندانی بوده دوم تیموتاوس هم یکی از رسالات زندانه پولوس دو بار تجربه زندانی شدن در روم داره اولین بار زندانش خیلی با ملایمت بود اگرچه او بین دو سرباز به زنجیر کشیده شده بود اما با احترام با او برخورد می و اجازه ملاقات داشت دومین باری که زندانی شد شرایطش خیلی بود. دومین زندان او امروزه شکنجه تلقی میشه. دوم تیموتاوس در خلال دومین تجربه زندان پولس نوشته شده. در اواخر دومین زندانی شدنش به فرمان نرون سر او را از تنش جدا کردند. پنج تا از رساله های پولس در زندان نوشته شدند. پولس از درون زندان برای فیلیپیان یک یادداشت تشکر می نویسه اگه شما در اون زمان زندانی بودید، زنده بودنتون بستگی به میزان کمکی داشت که از بیرون می‌رسید. فیلیپیان به کمک پولس اومدند و چندین بار برای او هدیه فرستادند. همونطور که پولس از فیلیپیان برای هدایاشون تشکر میکنه به اونها میگه واقعا از کسی انتظار هدیه نداره، اما آرزو داره که ثمرات این کار براشون فراوان باشه. پولس میدونست که خدا فیلیپیان رو به طور خاصی برای انجام این کارشون برکت میده. احتمالاً زندان‌های اون زمان جای بسیار بدبویی بوده. در باب چهارم این نامه پولس از فیلیپیان بابت هدایاشون تشکر میکنه و میگه اونها مثل عطری خوشبوه هستند احتمالاً پولس های مدید عطر خوشبویی رو استنشاق نکرده بود پولس میگفت این هدایایی که از طرف کلیسای فیلیپیان براش اومده مثل عطری خوشبوه هست. همونطور که این نامه محبت‌آمیز پولس رو به کلیسایی که اونو خیلی دوست داشت میخونید مشاهده میکنید که این یادداشت تشکر الهام گرفته شده در چهار باب نیمروخی از زندگی مسیح گونه رو ارائه میده. پولس به افسوسیان و به ما تعلیم داد که چطور به عنوان یک ایماندار در مسیح زندگی کنیم. با این حال در نامه خودش به فیلیپیان واقعاً چیزی رو تعلیم نمیده. اون نمونه بسیار بزرگی به ما میده که چطور به عنوان یک پیرو مسیح زندگی کنیم. موضوع باب اول اینه: فلسفه و رنج زندگی مسیح گونه. ما در این نامه این را از پولس یاد میگیریم. چون پولس فلسفه زندگی مسیح گونه با رنج رو به وسیله مثال زدن خودش بیان میکنه. در باب دوم پولس در مورد الگوی زندگی مسیح گونه با ما صحبت میکنه. پولس مثال های زیادی رو برای ما از افرادی میزنه که فلسفه زندگی مسیح گونه دارن. افرادی که واقعا این فلسفه رو برای زندگیشون داشتن و شور و اشتیاقی برای زندگی مسیح گونه داشتن. بعد پولس از خودش به عنوان یک مثال استفاده میکنه. او هیچ وقت تردید نمیکنه که بگه اگه میخواید بدونید که زندگی مسیح گونه چیه بیایید و مدتی با من زندگی کنید پولس خودخواه نبود او همیشه میگفت با فیض خدا من یک شاگرد نمونه برای مسیح هم. پس اگه شما میخواید بدونید که شاگرد مسیح بودن چیه بیاید و با من زندگی کنید من نمیدونم چند نفر از ما میتونیم بگیم به خونه ما بیاید و شش ماه با من زندگی کنید تا بدونید که یک شاگرد مسیح چطور باید زندگی کنه خب پولوس هرگز تردید نداشت که اینو بگه. عیسی وقتی که شاگردان رو ملاقات کرد، از این الگو استفاده کرد. عیسی به اونها گفت: "چی میخواید؟ اونها با این سوال جواب دادن: "کجا زندگی میکنی؟ عیسی گفت: "بیایید و ببینید." ما میخونیم که اونها اومدن و دیدن که عیسی کجا زندگی میکنه و با او زندگی کردند. به این ترتیب، شاگردان فلسفه و اشتیاق پیروی عیسی بودن رو آموختند. اونها الگوی خود مسیح رو دیدن، بعد پولس زندگی مسیح رو مطرح میکنه زندگی خودش رو مطرح میکنه و بعد زندگی تیموتاوس رو که مثال بزرگی از زندگی به عنوان یک شاگرد مسیح بود در باب دوم او از مردی به نام اپافرودیتوس مثال میزنه این مرد پیر, این مرد پیر کسی بود که پیامها و هدایای فیلیپیان رو برای پولس به زندان میبرد پولس شیوه زندگی او رو به عنوان فردی که واقعا فلسفه و شوق زندگی در مسیح رو داره مثال میزنه. در باب سوم پولس باب بزرگی رو به ما میده از چیزی که میشه به اون گفت هدف و جایزه زندگی در مسیح. پولس در باب سوم در مورد تجربه تبدیل شدن در راه دمشق با ما صحبت میکنه. حتما شنیدید که قبلا گفتم چیزی که در مورد تجربیات الهی مهمه جزئیات اون نیست. بلکه نتایج این تجربیاته. نتایج تجربیات شما چیه این مهمترین بعد تجربیات شما در خدا و در مسیحه پولس غالبا جزئیات تجربه تبدیل خودش در راه دمشق رو که در کتاب اعمال رسولان ثبت شده به ما میگه اینجا در فیلیپیان باب سوم پولس در مورد تجربه تبدیلش از لحاظ نتایجی که در پیدا داشته صحبت میکنه باب سوم فیلیپیان باب بسیار زیبایی هست که در اون پولوس از اصطلاحات حسابداری استفاده میکنه تا به ما بگه وقتی که او عیسی رو در راه دمشق ملاقات کرد چنان بود که گویی مسیح دفاتر حساب او رو وارونه کرد پولوس به ما میگه بعد از ملاقات با عیسی آنچه در ستون سود بوده به ستون زیان منتقل شده و آنچه در ستون زیان بوده به ستون سود انتقال یافته در باب سوم پولوس از روزی با ما صحبت میکنه که تبدیل شد و از روزی صحبت میکنه که از عیسی مسیح این سوال رو پرسید. خداوند از من میخواد چیکار بکنم؟ دغدغه مهم و این بود که عیسی مسیح چی میخواد ؟ او میخواست هدفی رو دنبال کنه که مسیح رو به خاطر اون نجات داده بود. به عبارت دیگه پولس در باب سوم به ما میگه که چطور اراده خدا رو بدونید؟ از کجا میتونید بفهمید که عیسی امروز، فردا و روزهای آینده از شما چی میخواد؟ همچنین در باب سوم نامه به فیلیپیان پولس خواست خدا رو اینطور عنوان می کنه. مستقیما به طرف هدف می می‌دوم تا جایزه ای را که شامل دعوت خدا به یک زندگی آسمانی به وسیله عیسی مسیح است به دست آورم پولس به ما میگه که چطور میتونیم اون جایزه ها رو به دست بیاریم پولس به ما میگه که چطور میتونیم خاندگی خدا برای زندگی هامون رو کشف کنیم به این نامه محبت توجه کنید این یادداشت تشکر برای فیلیپیان رو بخونید و از خدا بخواید که با شما از طریق این نامه کوتاه و عظیم صحبت کنم ازتون میخوام که فیلیپیان رو بخونید و از خودتون بپرسید آیا من فلسفه زندگی در مسیح رو دارم و آیا این فلسفه زندگی در مسیح اشتیاق من هست این چیزیه که باید بهش فکر کنید در باب 4 پولس یک باب به شدت کاربردی به ما میده که میتونیم بهش نسخه برای زندگی در مسیح بگیم به لحاظ کاربردی پولس به ما میگه که چطور در مسیح زندگی کنیم در باب چهارم پولس زندگی در ایسا رو بر آرامش متمرکز میکنه همه به آرامش ذهنی علاقمند هستند اگه شما بتونید کتاب خوبی در مورد آرامش ذهن بنویسید اون کتاب پرفروشی خواهد شد چون همه به دنبال آرامش هستند پولس تعلیمش رو درباره زندگی در مسیح بر موضوع آرامش متمرکز میکنه پولوس شانزده شرط رو در باب چهارم بیان میکنه که از طریق اونها شخص میتونه به آرامش برسه اما باب چهارم نه تنها نسخه برای زندگی در آرامش هست بلکه نسخه برای زندگی در مسیح هم هست. اگر در زندگیتون به آرامش نیاز دارید به دقت باب چهارم رو مطالعه کنید. من میخوام نامی فیلیپیان رو باب به باب به روش خلاصه کردن باب بررسی کنم. در آیات 20 و 21 از باب اول پولس رسول با مثال اشتیاق برای زندگی در مسیح رو نشون میده. پولوس با مثال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 هر کسی فلسفه‌ای برای زندگیش داره شاید شما فکر کنید که به فلسفه علاقمند نیستید ولی همه به فلسفه علاقه‌مندند فلسفه چیزیه که از طریق اون میتونید این سوال عیسا رو جواب بدید اجسام رو چطور می‌بینید در موعظه سر کوه در باب شش انجیل متا ایسا به ما میگه که ما میتونیم بدنی مملو از نور یا بدنی مملو از تاریکی داشته باشیم این بستگی به این داره که اجسام رو چطور می‌بینید عیسا به ما گفت که چشم چراغ بدن هست که چشم دنیای بیرون رو برامون معنی میکنه. یا به وسیله اون میتونیم اجسام رو ببینیم ای که اجازه میده نور یا تاریکی به زندگی شما وارد بشه دیدگاه یا طرز تفکرتون هست شما اجسام رو چطور می‌بینید فلسفه زندگی شما جواب شما به این سوال هست اجسام رو چطور می‌بینید آیا شاگردان مسیح فلسفه زندگی دارند البته که دارند به قول پولس فلسفه و اشتیاق پیرو مسیح بر اساس بست پذیری قرار گرفته وقتی پولوس از زندان برای فیلیپیان نامه مینوشت نمیدونست که عاقبت این زندان چی میشه نمیدونست که آیا زنده از زندان خارج میشه یا نه گزارشات تاریخی حاکی از آن هست که او از زندان زنده بیرون آمد و به اسپانیا رفت در آنجا خدمت کرد و دوباره به افسوس برگشت و در آنجا دوباره دستگیر و بعد تحت شرایط سختی به روم منتقل شد و تا زمانی که سر از تنش جدا بشه در زندان مامرتین روم نگهداری می شد پولس می نویسه من می خوام که مسیح در بدن من جلال پیدا کنه چه با زندگی، چه با مرگ، چه با آزادی، چه با اسارت، خواه با سلامتی یا با مریضی تمام این احتمالات در کنترل خدا هست فلسفه من اینه که می خوام مسیح در بدن من جلال پیدا کنه اینکه چطور مسیح می تونه در بدن من جلال پیدا کنه در کنترل خدا هست به هر حال وقتی مریضم دعا میکنم خدایا تو چطور میتونی توسط این مریضی در من جلال پیدا کنی وقتی سالم هستم دعا میکنم خداوندا تو چطور میتونی به واسطه سلامت من جلال پیدا کنی وقتی که آزادم اینطور دعا میکنم خدایا من چطور میتونم از این آزادی استفاده کنم تا مسیح در درون من جلال پیدا کنه وقتی که در زندانم دعا میکنم خدایا تو چطور میتونی از اسارت من استفاده کنی تا مسیح در من جلال پیدا کنه اگر زنده ام برای مسیح زندگی میکنم زیرا برای من زندگی یعنی مسیح تنها دلیلی که من زندگی میکنم اینه که مسیح در من جلال پیدا کنه اگر بمیرم میخوام که مسیح رو با مرگم جلال بدم زیرا مقصود من از زندگی مسیح است و مردن نیز به سود من تمام میشود بعد پولس به ما میگه بین دوراهی گیر کرده او اشتیاق داره که این زندگی رو ترک کنه و با مسیح باشه که براش خیلی بهتره اما به خاطر ما زنده رو واجب تر میدونه خب این فلسفه پیروان مسیحه که در مسیح زندگی میکنن وقتی یک پیرو مسیح مثل پولس چیزی رو که به عنوان فلسفه زندگی به اون ایمان داره با اشتیاق به کار میبره شوقی رو که برای زندگی در مسیح داره به نمایش میذاره در باب اول در مثال خود پولس ما نمایشی از فلسفه زندگی در مسیح رو میبینیم اما یه چیز دیگه هم می بینیم. شوقی برای زندگی در مسیح می‌بینیم. اما چیز ای هم می‌بینیم و اون شوق برای زندگی در مسیح هست. تمام اینها با کلمه انجیل ارتباط پیدا میکنه. در باب اول فیلیپیان پولس رسول به پیشرفت انجیل اشاره میکنه. او برای فیلیپیانی می‌نویسه که شنیدن پولس دوباره زندانی شده. وقتی که فیلیپیان برای اولین بار پولس رو ملاقات کردند، او در زندان فیلیپی به سر می‌برد. پولس معمولاً در زندان بود. وقتی که پولوس در مورد دوران حبسش به فیلیپیان می اینطور این طور تا آنجا که تمام اعضای گارد امپراتوری و سایرین نیز میدانند دانند که من در خدمت مسیح و به خاطر او زندانی شدم. و از طرف دیگر اغلب برادران مسیحی به سبب حبس من به قدری قوی دل شدهاند که جرعت می کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند. البته بعضی ها به علت حسادت و مجادله به مسیح بشارت میدهند ولی دیگران این کار را با حسن نیت میکنند اینها از روی محبت چنین میکنند زیرا میدانند که من به جهت دفاع از انجیل در اینجا افتاده ولی آنها از روی همچشمی به مسیح بشارت میدهند نه از روی صمیمیت زیرا تصور میکنند از این راه میتوانند بار زحمت مرا در زندان سنگینتر سازند چه اهمیت دارد از هر راهی باشد خواه از روی نیت درست یا نادرست مسیح به مردم اعلام می شود و این امر برای من مایه خوشوقتی است. آری من شادم و همچنان شادی خواهم کرد. برخلاف قلاتیان فیلیپیان انجیل رو تحریف نکرده بودند. اونها انجیل واقعی رو معزمی کردن. حتی اگه انگیزه هاشون یکی نبود پولس میگه چه اهمیت داره. از هر راهی که باشه خواه از روی نیت درست یا نادرست مسیح به مردم اعلام میشه و این امر برای من مایه خوشوقتی است. آری من شادم و همچنان شادی خواهم کرد خیلی از برادران فیلیپی با انگیزه های خوبی انجیل رو موعظه می کردن اما اونها موعظه می چون پولس نمیتونست موعظه کنه ماموریت و خدمت کلیسا مثل یک کلاس علمی و تمرینات آزمایشگاهی هست این چیزی که نامه فیلیپیان با تأکید فراوان بر زندگی در مسیح به ما میگه آیا این کلاس های علمی رو یادتون میاد که بعد از اینکه به درس گوش میدادید باید ساعت‌های رو در آزمایشگاه بسرمی بردید؟ تعلیم همون درس تئوری هست و به کار بردن تعلیمات هم قسمت آزمایشگاهه. دانشجویان رشته‌های سختی مثل شیمی عالی یا بقیه رشته‌های علمی به شما میگن که درس‌هایی که سر کلاس می‌گذرنن خیلی راحتتر از آزمایشگاه هست. تکیه نامه فیلیپیان بر برد آزمایشگاهی زندگی در مسیح است. جایی که ما باید چیزی رو که یاد گرفتیم به کار ببریم. این تاکید به ما میگه مسیحیت مثل یک آزمایشگاه علمیه شما نمیتونید درستون رو بدون آزمایشگاه بگذرونید وقتی که شما در روز یکشنبه به کلیسا میرید در واقع درس تئوری رو یاد میگیرید اما وقتی که پرستش آخر جلسه تمام شد شما باید بیرون برید و تمام چیزهایی رو که در درس تئوری آموختید در آزمایشگاه هم انجام بدید آزمایشگاه جاییه که پولوس در نامه خودش به فیلیپیان اون خیلی تاکید کرده. نامه فیلیپیان در مورد زندگی در مسیحه. همچنین باب اول این نامه بر این واقعیت تاکید داره که زندگی در مسیح مثل یک تیم ورزشیه. خدا شبانهای سوپرستار نمیخواد که خارق های ای رو شبانی کنن. این خوبه اما من به شما چیز بهتری میگم. چیز بهتر یعنی پرورش دادن مقدسین تا برای کار خدمت آماده بشن و متقاعد کردن مردمی که روی نیمکت کلیسا نشستن به اینکه که کار خدمت به اونها واگذار شده وقتی این مردم عادی اعضای کلیسا متوجه بشند که کار خدمت به کل کلیسا واگذار شده اون وقتی که ما این معموریت بزرگ رو اجرا کردیم و کلیسای ایسای مسیح هم واقعا همون کلیسایی میشه که طبق طرح ایسای مسیح هست این همون چیزیه که پولس میگه او میگه من در زندانم ابرمرد در زندانه حالا تمام مقدسین مشغول کار خدمت هستند پس اسارت من در زندان باعث پیشرفت انجیل شده پولس از پیشرفت و انتشار انجیل خیلی خوشحال بود همچنین پولس به این آیه اشاره میکنه من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول باشم شما را شریکان خود در فیض خدا می دانم. او به این هم اشاره میکنه به خاطر ایمان انجیل تلاش میکنی او می نویسه شماهایی که ایمان دارید باید طوری با هم زندگی کنید تا نتیجه آن ایمان به انجیل باشه شما باید طوری با هم زندگی کنید تا دنیای بی‌ایمانی که در اطراف شما هست به انجیلی که موعظه میکنید ایمان بیارن. پولوس به ما میگه تمام این وظایف کلیسا باید با چیزی انجام بشه که او بهش رفاقت در انجیل میگه به قول مرحوم سام شو میکر رفاقت یعنی دو نفری که در یک کشتی هستند. وقتی که من به افرادی که در شرایط بحرانی هستند مشاوره میدم بهشون این حرف رو میزنم که رفاقت یعنی دو نفر در یک کشتی و به اونها میگم که میخوام بدونید که من هم با شما در یک کشتی هستم یک بار من این حرف رو به مردی زدم که نو بود و مشکلات جدی داشت وقتی که من این حرف رو به او زدم او معنی رفاقت رو نمیدونست من به او گفتم میدونی کلمه رفاقت یعنی دو نفر که با هم در یک کشتی هستند و من میخوام بدونی که من اینجا در کنار تو هستم او گفت پس پارو بزن رفیق پارو بزن و این به تعریف من از کلمه رفاقت اضافه شد مفهوم رفاقت برای او تازگی داشت او به من گفت اگه تو با من در یک کشتی هستی پس توی کشتی من چی کار میکنی؟ آیا فقط جا گرفتی و از وقت خودت لذت میبری و استراحت میکنی یا اینکه میخوای برای من پارو بزنی؟ تو واقعا توی این کشتی کنار من هستی و میخوای به من کمک کنی؟ وقتی شما با کسی رفاقت دارید و اون شخص با شما در یک کشتی هست باید حضورش فرقی ایجاد بکنه. پولوس محبت خودش به فیلیپیان رو در قالب این کلمات بیان میکنه. کنه. مهم و دائم من اینه که انجیل عیسی مسیح رو معزه کنم. من شما رو در قلب خودم دارم شما در دقدقه من برای پیشرفت انجیل و دیدن مردمی که واقعا به انجیل ایمان میارن با من شریک هستید شما در این کشتی با من هستید و پارو میزنید برای همینه که پولس اینقدر فیلیپیان رو دوست داشت در باب اول فیلیپیان پولس دلیل وجود کلیسا رو تعریف میکنه پولس تعریف زیبایی از کلیسا در آیه 27 از باب اول ارائه میده او میگه به هر حال طوری زندگی کنید که رفتار شما شایسته انجیل مسیح باشد و من که بیایم و شما را ببینم و چه نیایم مایلم درباره شما بشنوم که در یگانگی روح پا بر جا هستید و با هماهنگی پیوسته دست به دست یکدیگر داده به خاطر ایمان انجیل تلاش می‌کنید اینجاست که پولس رویای خودش برای یک کلیسای ایدئال رو بیان می‌کنه پولس به فیلیپیان میگه شما از نظر من یک کلیسای ایدئال هستید و این چیزی بوده که همیشه می‌خواستم در مورد شما بشنوم حالا چه از زندان آزاد شوم و دوباره شما را ببینم یا دیگه شما رو نبینم در هر حال این چیزی که همیشه دلم می‌خواست در مورد شما بشنوم دلم می‌خواد بشنوم که شما گروهی هستید که به شایستگی انجیل عیسی مسیح زندگی می‌کنید دلم می‌خواد بشنوم که شما گروهی از مردم هستید که در یک روح با یک ذهن محکم ایستاده اید و با هم برای ایمان انجیل تلاش می‌کنید به طور خلاصه و در تفسیر این آیه پولس میگه این چیزی که میخوام بشنوم میخوام بشنوم که شما گروهی از مردم هستید که در مورد همتون گفته میشه که شما پیرو مسیح هستید هر یک از شما پیروان مسیح به شباهت مسیح هستید و همه شما که به شباهت مسیح هستید دنبال این هستید که به شباهت مسیح با هم زندگی کنید تا دنیا به انجیل ایمان بیاره این چیزیه که میخوام در مورد شما بشنوم این الگوی من برای یک کلیسای ایداله. نمیدونم آیا این در مورد کلیسای محلی که شما عضو اون هستید صدق میکنه یا نه. آیا میتونید بگید تمام اعضای کلیسای محلی شما پیرو مسیح هستند؟ در واقع اگه به این موضوع فکر کنید، مردم کاری در اون کلیسا ندارن مگر اینکه پیرو مسیح باشند. کلمه کلیسا یعنی کلیسای یک پارچه. کلیسا یعنی افرادی که خوانده شدند تا با مسیح رفاقت داشته باشند. و به اون خواندگی پاسخ داده‌اند. اگه کسانی که مسیح را نمیشناسند و خوانده نشدن که پیرو او باشند، اونها واقعا بخشی از کلیسای حقیقی نیستند. اونها شاید نقش یک عضو رو در کلیسای محلی بازی کنند، اما بخشی از کلیسای حقیقی نیستند. کلیسای حقیقی از کسانی تشکیل شده که پیرو مسیح هستند. چون اونها صدای روح القدس را رو شنیدن که اونها را فرا خونده تا با مسیح رفاقت داشته باشند. اگر تمام اعضای کلیسای شما پیرو مسیح هستند و هر پیرو مسیح به شباهت مسیح است پس کلیسای شما یک کلیسای واقعیه. هر عضوی باید طوری زندگی کنه که شایسته انجیلی باشه که در اونجا موعظه میشه بر اساس این نامه و نامه های پولس به افسوسیان و قرنتیان پیروان مسیح در کلیسای شما باید با هم چنان شبیه مسیح باشند که حاصل اون ایمان انجیل باشه بعد کل دنیا جهانی که در اطراف اونها وجود داره به انجیل ایمان میارند چون اونها با هم شبیه مسیح هستند. این کلیسای واقعی و کلیسای معتبره در سخنان پولس به فیلیپیان باب یک آیه 27 رفاقت انجیل وجود داره که بخشی از کلیسای حقیقی عیسی مسیح در جهان امروزه نامه پولس به فیلیپیان باید تمام کلیساها رو به چالش بکشه و به اونها الهام بده تا با کسانی پر بشند پیروان راستین مسیح هستند و فلسفه و شوق زندگی در مسیح را دارند. نامه پولس رسول به کلیسای فیلیپیان طبیعت، اساس و وظایف کلیسا را با مثال به ما نشون میده. این مثال باید الگویی برای تمام شاگردان راستین و پیروان واقعی عیسی مسیح باشه که شوق و فلسفه زندگیشون هر روز مسیح باشه. امیدوارم شما و کلیساتون این الگوی زیبا رو دنبال کنید شما رو تشویق می کنم. شما رو تشویق می کنم اگر شبان یا رهبر کلیسای محلیتون هستید این الگو رو مطالعه کنید و ببینید چطور میتونید شما و کلیساتون با فیض خداوند در شوق و فلسفه زندگیتون بیشتر به شباهت مسیح باشید تا تمام کسانی که این رو می بینن به انجیل ایمان بیارن چون شما شاهدان خدا هستید. این چالش فیلیپیان برای من و شماست. دوستان، بر اساس کتاب مقدس، ما تشویق میشیم که انجیل رو در حرف و عمل بشارت بدیم. اما دیدیم که بیشتر بر عمل ما تاکید داره. ما از رساله فیلیپیان یاد گرفتیم که عمل فقط به نیست که با صدای بلند کلماتی بگیم بلکه باید در عمل نیز به طور شفاف اونها رو به کار بگیریم. بسیار خوشحالیم از این که امروز در این درس با ما همراه بودین. دعای ما اینه که خدا در شما کار کنه تا به شباهت مسیح در بیاین تا بتونین شاگرد تأثیر گذاری در پیامی باشید که خدا با همه ما اون رو در میون گذاشته. فیض و آرامش پدر خدای ما عیسی مسیح با شما عزیزان باشه. ما با شادی دعا می کنیم چون شما تا به اینجا همراه وفاداری برای ما بودید و مطمئنیم کارهای خوبی رو که خدا در شما شروع کرده به وسیله ایسای مسیح تکمیل خواهد کرد. آمین.